محمد، فردا با من به چایخانه آیی؟ چایخانه؟ بله، من یک چایخانه خوب می شناسم کجاست؟ نزدیک است خیابان بهار آنجا فقط چای می خوریم؟ نه، غذا هم دارد دیزی دیزی چیست؟ دیزی یک غذای ایرانی است گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به آن آبگوشت هم میگویند. غذاهای ایرانی خوشمزه است. بله، دیزی هم خوشمزه است. ساعت چند به چایخانه میرویم؟ من ساعت دوازده در میدان انقلاب منتظرت هستم. خوب است. من هم ساعت دوازده به میدان انقلاب می آیم